بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوند بی اندازم احرابان نهایت باره این آیات قرآن و کتاب واضح آشکار کنیم است هدایتی و مجده برای مؤمنان آنانی که نماز را به تمام و کمال بر می دارند و زکات می دهند و هم ایشانند که بر آخرت یقین دارند بگمان آنونی که با آخرت ایمان ندارند اعمالشان را برایشان آراسته پس ایشان سرگردان. اینهایند که برایشان عذابی شدید است و در آخرت هم ایشانند زیانکارترین مردم و بگمان قرآن به تو از نزد خدای با حکمت و دانایی رسانی درشاند بیاد آور وقتی را که موسا و خانواده خود گفت بیگمان آتشی را دیده هم و زودی من از آن برای شما خبری می آورم یا پاره آتش می آورم تا گرم شد پس چون پیش آن آتش آمد ندا شد با برکت است آن که در آتش است و آن که پیرامونی آن می باشد و منزه هست خداوند پروردگاری عالمیان ای موسا بیگمان منم آن خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت عصایت را بیافگند پس چون آن را دید که حرکت میکرد گوی ماری مار سسید است، برگشت پا و با فرار نهاد و به خود ندید ای موسا ما ترس بیگمان پیانبران نزد من نمی ترسن. مگر کسی که کس ستم کرد سپس در بدل آن بعد از به دینی کی کرد فشاک او که من امر زنده و مهربان هست وقادت یادت فی جید ستفوج بیضا دست خود را در جیب خود درآورد که کسفه دیان درخشان بدون لکه یا عیب بیرون آید اینها از نه نشانه اند فرعون و قوم او بگوان ایشان قوم فاسق اما هنگامی که نشان های روشه فخش ما به ایشان آمد آنها گفتند این است استاشکار و از روی ستمگاری و تکبر از آنها انکار کردن گرچ دلشان و آن گواهی می داد پس بیبین که سرانجام انجام مفسدان چی بگمان ما بر داود و سلیمان علم دادیم و آنها گفتند ستایش خدای راست که ما را بر بسا از بندگان مؤمن خود برتری بخشید و سلیمان وارث داود شد و گفت ای مردم برای ما لسان مرغان تعلیم داده شده است و از هر چیز به ما عطراش شده است واقعا این از همان فضیلت آشکار و برای سلیمان لشکریان او از جن آدمی و مرغ جمعی شدن و ایشان همه با نظم خاص قرار داده شده بودند. تا چون به سرزمین مرچگان رسیدند مرچه گفت ای مرچگان بلانه های خود دراید مبادا سلیمان و لشکریانش شما را نافهمیده پایمان کند سلیمان از سخن موچه تواسم کرده گفت پروردگار مرا بر آن دار تا شکر نعمت را بستایم که به من و به پدر و مادر من عنایت کردی و عمل صالح انجام دهم ده که مورد رضای تو گردد و به مرحمت خود مرا در سف بندگان صالح خود درا و او از پرندگان بازجویی کرد و گفت مرا چی شده که حد, حد را نمی بینم یا او از جمله غایبان است بیگمان او را شدیدا مجازات خواهم کرد یا او را سر خواهم برید مگر اینکه بر غیاب خود برایم دلیلی واضح بی اورد اما دورۀ غیاب خود حد صرف کمی دوام کرد چون بازگشت گفت من معلوماتی فراگیری کسب کرده که تو آن را فران نگرفتی و به تو از سرزمین سبا خبر راستین آورده بیگمان در آنجا زنی را یافتم که بر ایشان سرطنت کرد و به او از هر چیز داده شده هست و تختی بزرگ دارد و در که او و قومش به وزی خداوند به آفتاب سجده میکنند شیطان اعمالشان را برایشان زینت داده است و ایشان را از راه حق باز داشته است و از این رو رهیاب نخواهند شد چرا به خداوند سجده می که آنچه را که در آسمان حوزه و زمین پنهان است بیرون می و آنچرا را پنهان می و آنچه را آشکارا می کنید می خداوندی که جز او معبودی نیست و پروردگاری عرش عظیم است سلیمان گفت به زودی ما خواهیم دید که آیا راست گفته ای یا از دو این نامه هم را ببر آن را به ایشان بیرفتند سپس از ایشان کناره بگیر و انتظار بکش بیبین که چی جواب میده. ملکه گفت ای بزرگان کام بیگمان گمان نامه گیرامی و سوی من افتنده شده است این نامه سلیمان است و این به نام خداوندی به اندازه مهربان و نهایت با رحم آغاز یافته و به این توصیه شده که بر من برتری جویید و به سوی من به حیث مسلمان بیایید ملکه گفت ای بزرگان قوم در این کارم به من فتوی دهید من تاکنون هیچ کاری را فیصله ام مگر آنکه شما حاضر بودید گفتند ما صاحب قوتیم و نیروی شدید جنگی داریم و فیصله کار در اختیار توست پس بیبین چی دستور میدی؟ گفت چون پاچاهان به سرزمین درایند آن را به تباهی می کشانند و اهالی صاحب عزت آن را زلیل می سازند و چنین می کنند به ایشان طرفه می فرستم و با این ترتیب می بینم که فرستادگان من با چی برداشتی بر چون نمائنده ملیکه نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت، آیا مرا به مالیم داد میکنید؟ پس آنچه خداوند به من داده بهتر است از آنچه برای شما داده، بلکه این شما هستید که به هدیه خود دل خوش کرده به سوی ایشان بازگرد و به با ایشان بگو که با چنان لشکریانی به جنگ ایشان خواهیم آمد که توان مقابله با آن را نداشته باشند. ایشان را از آنجا بازلت بیرون می کنیم و ایشان احساس حقارت خواهند کرد سلیمان گفت ای بزرگان قوم کدام یک از شما تخت او را نزد من می آورید پیش از اینکه ایشان با فرمان بری نزد من بیاید فرد کار از طایفه جن گفت من آن را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی به تو می آورم بگمان من به این کار واقعا توانا و امینم. شخصی که علمی از کتاب داشت گفت من آن را به تو پیش از آنکه چشم بر همز پس چون سلیمان آن تخت را دید که در نزد او استقرار یافته گفت این از فضل پروردگار من است. تا مرا آزمایش کند که آیا شکر می کنم یا ناسفاسی می نمایم. کسی که شکر کند پس حقا که برای خود شکر می کند و کسی که ناسپاسی کند یقینا پروردگار من بینی یا صاحب کرم است سلیمان گفت تختش را برای او ناشنا سازی تا ببینیم آیا رحیاب می شود یا از کسانی است که رحیاب نمی شود پس چون ملکه آمد به او گفته شد آیا تخت تو اینگونه است گفت عینن این همان است و پیش از این به ما علم داده شده بود و فرمان بردار بودی سلیمان او را از آنچه در سابق جز خدا میپرستید بازداشت و ای بیگمان از گروه کافران بود و او گفته شد قصر برای. اما هنگامی که آن را دید آن را آب پنداشت که دارای احواج متلاطم است و از ساقهایش جامه را برزد سلیمان گفت بگمان این قصر است که از شیشه شفاف ساخته شده است بلقیس گفت ای پروردگار من واقعا بر نفس خود ستم کرده و حالا با سلیمان و خداوند پروردگار عالمیان ایمان آوردند و سوی قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم که خداوند را بپرستید اما ایشان دو گروه شدند و با هم به مخاسمه پرداختند. صالح گفت ای قوم من چرا به بدی بیش از نیکوی شتاب میکنید؟ چرا از خدا طلب آموزش نمی کنید؟ تا باشد با شما رحم شود؟ گفتند ما با تو و با کسانی که همراه تو آن شگون بد زدید سالح گفت مرغ اقبال و ادبار شما در نزد خداوند است بلکه شما مردمی هستید که آزمایش می شوید و در آن شهر نه گروه بودند که در زمین فساد میورزیدند و مسلح نبودند گفتند بیایید به خدا سوگند یاد کنید بر صالح و خانواده او شب خون میزنیم و بعد از آن به ولی او میگوییم ما حلاکت خانواده او را مشاهده نکردیم و از آن خبر نداریم و ما راستگوییم ایشان چاره سنجیدند و ما نیز چاره سنجیدیم در حالی که ایشان احساس نداشتند پس ببین انجام دستیسه ایشان چیگونه بود؟ همین بود که ایشان و قومشان همه را نابود کردیم. پس این است خانه که به سبب ظلمشان و ایران شده است بیگمان در این نشانه است برای قومی که می دانند و آنانی را که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند نجات دادید و یاد آور لوت هنگامی که به قوم خیش گفت آیا کار شرماور انجام می دهید در حالی که زشتی این عمل را می بینید؟ آیا با مردان و نبا زنان به شهوت پیش می شوید بلکه شما قوم جاهل هستید؟ پس جواب قوم او جز این نبود که با یک دیگر گفتند خانواده لوت را از شهر خود بیرون کنید ایشان یقین مردم پاکدامنی هستند پس او و خانواده اش را نجات دادید جز زنش را که مقدر کردیم از جمله با کیماندگان در عذاب باشد و بر ایشان بارانی از سنگ چل را بارانیدیم و چی بد است بارانی بیم داده شدگان بگو ستایش خدای راست را و سلام بر بندگانی که ایشان را برگزیده است آیا خدا بهتر است یا آنچه با او شریک می یا کیست که از و از زمین را فریده و برای شما از آسمان باران را نازل کرد پس با وسیله این آباغ سرسبز و شاداب را رویانیدیم برای شما ممکن نبود که در آن را برویانید آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ نخیر بلکه آنها مردم اند که از راه حق انحراف میورزند یا کیست که زمین را قرارگاه گردانید و در میان آن رودبارها را جریان داد و بران کوهای استوار را قرار داد و میان دعا به حایل را به میان آورد آیا معبود دیگر با خدا هست؟ نخیر بلکه اکثرشان نمی داند یا کیست که دعای درماندهی را چون به اون یایش کند اجابت می کند و سختی را برطرف می و شما را خلافای زمین قرار می آیا معبود دیگر با خدا هست؟ بیشتر کم است آنچه پند میگیرید یا کیست که شما را در تاریکی های خشکا و بحر رهنمایی می کند و کیست که بادها را پیش از رحمت خود به حیث بشارت دهنده می فرستد آیا معبود دیگر با خدا هست؟ خداوند از این که با او شریک می آورند برتر است. یا کیست که آفرینش را آغاز می کند و باز آن را تجدید می کند و کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد آیا معبود دیگری واقعی بگو دلیل خود را بیاورید، اگر راست می بوید بگو جز خدا هیچ یک از کتانی که در آسمان ها و زمین هند غیب را نمی دانند و نیز نمی دانند چی وقت برانگیخته می شود بلکه علم ایشان در مورد آخرت به هم پیوست یعنی در زمینه به حیرت ماندند بلکه ایشان در آن در شک هستند بلکه ایشان در مورد آن نابینا هستند کافران میگویند گویند آیا وقتی که ما خاک باشیم و پدران ما نیز آیا باز هم از خاک بیرون آورده می واکن واقعا به ما این وعده داده شده و قبل از این به پدران ما نیز و این جوز افثانه نیست بگو در زمین سیاحت کنید بنگرید که عاقبت گناهکاران چی گناه شد و بر ایشان غم مخور و از دسیسه هایشان تنگل مباش میگویند چی وقت این وعده به سر خواهد رسید اگر راست میگوید بگو شاید بعضی چیزهایی را که به شتاب میتلبید به شما پیابای فرار است و بیگمان پروردیگار تو بر مردم صاحب فضل است اما اکثر ایشان سپاسگزار نیستند و بیگمان پروردیگار تو همه چیزهایی را که در سینه های خیش پنهان می کند و همه چیزهایی را که آشکارا می کنند به خوبی می دانند. هیچ رازی در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتاب آشکارا ثبت شده است بگمان این قرآن برای بنی اسرائیل بیشتر آنچه ایشان در آن اختلاف می ورزند بیان می کند و بگمان این قرآن هدایت است و رحمتی برای مؤمنان بگمان پروردگار تو و حکم خود در میانشان فیصله می کند و هم او صاحب قدرت منی و دانا. پس بر خدا توکل کن حقا که تو بر طریق حق آشکار هستی بگمان تو مردگان را شنوانده نمی توانی و نه هم به آدمهای های کر دعوت به سوی حق را شنوانده می توانی انگامی که رو به فرار نهند و پشت بگردانند نه هم می توانی رهنمای نابینایان از گمراهی شان باشی شنوانده نمی توانی مگر کسانی را که به آیات ما ایمان آورده اند پس ایشان به آن تسلیم هستند و چون وعده عذابشان فرار است. از زمین جانوری یعنی دابت الرد را برای ایشان بیرون آوریم که به آنها سخن گوید به سبب آنکه مردم به آیات ما یقین نداشتند و روزی که از هر امتی طایفهی از کسانی را که آیات ما را تکذیب می کردند گرد آوریم و ایشان دستبندی شوند تا چون برای بازپرسی بیایند و خداوند به ایشان بگوید آیا آیات مرا تکذیب کردید در حالی که علم شما به آن احاطه ندارد یا چی می کردید؟ و واده عذاب بر ایشان به نسبت این ستم می کردن تطبیق شد و ایشان سخنی گفتن نمی توانند زیرا جواب و دلیل ندارد آیا ندیده که شب را آفریدیم تا در آن آرام گیرند و روز را روشنی بخش آفریدیم بگمان در این نشانه است برای مردم مؤمن. و روزی را باید داشته باشید که در سور دویده می شود پس آنانی که در آسمان هایند و آنان که در زمین همه مسترب می شوند. جز کسانی که خدا بخواهد و همه به حضور او به خواری می آیند و را می بینی و می پنداری که ساکنند ولی در حقیقت همچون ابری در حرکتند سن خدا و آفرینش او است که هر چیز را محکم و استوار ساخته است حقا که او به آنچه می کنید است کسی که کاری نیکی انجام دهد ده پس به او پاداش بهتری از آن می باشد و ایشان از دهشت آن روز در است. و کسی که عمل ناشایستی انجام دهد ده پس چنین مردمی به روی خود در آتش انداخته می شوند آیا جز به همان چیزی که عمل می کردید پاداش داده می شوید بگو به من امر شده است تا پروردیگار این شهر یعنی مکه را پرستش کنم ذاتی که آن را حرم قرار داده و هر چیز از آن اوست و به من امر شده تا از مسلمانان باشم و اینکه قرآن را بخوانم پس هر کی رحیاب شد به نفع خودش رحیاب می شود و هر کی گمراه شود پس بگو من صرف از بیم دهندگان هستم و بگو ستایش از آن خداست ذاتی که به زودی نشانه های خود را به شما می نمایاند و آنها را می شناسید و پروادگار تو از آن چی می کنید غافل نیست